زیر نظر مهدی سوهیلی شنوندگان پرمهر و سخنشناست باز هم سپاس ما را بپذیرید موج انایت شما موجب شد که برنامه بزم شاعران یعنی برنامه دلخواه شما در جای خود برقرار بماند و باید گفت این شما اید که با تشفیقها و تحسینهای بیشمار به بزم ما شکوه و رونق میبخشید و در درجه اول مایه گرمی این بزم شما هستید بلبل از فیض گلا موخ سخن برنا نبود این همه قول و قذر تعبیه در منقارش نکته ای که باید به استهزار برسانم این است که بنده بدین وسیله از عموم شاعران نویسندگان و شخصیت های پر ادبی مملکت از سراسر کشور دعوت می کنم که آمادگی خود را برای شرکت در این برنامه ابراز فرمایند زیرا این در به روی تمام سخن پروران گرانمایه و هنروران گرانپایه باز است و مقدم کسانی را که خاطرات دلپسند و شیرین و آموزنده و ابرتامیز دارند عرج می نهیم و در انتظار عنایت ادبای گرانقدر و نادرگویان سخن سنج هستیم در برنامه بزم شاعران این هفته خانم پروین بامداد و آقایان مهرداد اوستا علی اتحری کرمانی شرکت دارند و هنرمان این بازم آقایان ایرج و فرهنگ شریف هستند و اما میهمان گرانقدر ما میهمان عرجمند این هفته ما نویسنده مشهور و دانشمند استاد عبدالرحمن فرامرزی هستند که عموم شنوندگان با مقالات و نوشته های ایشان آشنایی کامل دارند و بنده استدعا دارم این بزرگواران از خانم شروع میکنیم به معرفی خودشون بپردازن پروین بامداد دختر مرحوم مرزا حسین خان سبا مدیر روزنامه ستاره ایران و بدر ملوک بامداد هستم بنده عبدالرحمن فرامرزی مدیر روزنامه کیهان که مدتا هم معلم بودم داریم مملکت و از کوچکترین کلاس یعنی از کلاس پنجم امتدایی شروع کردم درس دادم تا آخرین کلاس دانشگاه و بنابراین خوب همه آقایون منو میشناسند دیگه معرفی بیش از این استاد سیغمبر اکرم میفرماید من علمانی حرفند فقط سگرنی ابدا هر کسی که حرف من یاد بده منو بنده خودش کرده و شما حق مولایی برگردن تمام شاگردانتون دارید و ما از تلامیزه و شاگردان است. تشکر میخوان بله کارم معلمیه و گهگاهی چیزایی مینویسم خب جنابا جم که مشهور هستید و شعرتون مشهور کارتون مشهور علی اطحری کرمانی پیش میکنم کافی باشی بسیار خوب بنده هم مهدی سوهیلی راسته یادم رفت که ارز کنم مهمان دیگر ما آقای رضایان هستند و اگر هر یک از شاعران هین برنامه علاقه من بودند می‌تونن شیرشون رو برای بیان کردن در اختتراق رضایان بگذارن. سپاسگزارم. خب، استاد فرامرزی از جناب علی شروع می‌کنیم و مقام شیخوخیتتون اقتضا می‌کنه که آغاز کنید این برنامه رو و با خاطره‌ای صحبتی حرفی با شنوندگان رو مستفیض بفرمایید. چون فرمودید که بر حسب سن شروع می‌کنیم و مطابق اصول فرنگی مامی هم خانم‌ها مقدمم، من داشتم می‌گفتم اول خانم داد صحبت بفرمایید رعایت هر دو خیزمت یاد داری شکست نفسی میفرمایید جناب آقای فرامرزی حالا من بگم یا ایشون حالا بفرمایید هر طور دوست دارید حالا چی بگم حالا خاطرهی بفرمایید صحبتی بفرمایید ارز کنم که من اولا نمیدونستم وزی اینجا چیه چون برام بی سابقه بود و اما سوال فرمودید که خاطراتی اگر من دارم بگم هر انسانی در عمرش خاطرات زیادی داره مخصوصا هر کسی نیش زیادتر باشه خاطراتش بیشتره اجنابالی علاوه برسین تجربه بله. و اصدادیتون خاطر همگیه که یه مسئله است مصری میگن انلی آشی شوف این لی اکثر هر که عمر زیاد آورد زیاد میبینه و هر که را بره و جانگردی بکنه بیشتر میبینه من هر دوش بکردم به جهت خاطرات زیادی دارم اما چند خاطره که برای خودم مونده و خیلی عجیب بوده یکیش الان براتون تو نقل میکنه خواهش میکنه همه استعداده میدونید که در تاریخ اسلام مهدویت یعنی انکزار امام زمان یک حوادث زیادی به وجود آورده بله مدیان فراوان بشه کسان زیادی ادعا کردند و بعضی هم به همین اسم تشکیل سلطنت دادن مثل سلسله فاطمی ها در افریقا و در مصر ارز موحدین در مغرب افریقا اینا همش به ادعای مهدویت سلسله های تشکیل دادن هنوزم در افکار اشخاصی هست که به این اسم بلکه بتونن سلسله های تشکیل بدن ما در بحرین بودیم، بنده بچه‌ بودم، هنوز یعنی در سن مراهقه، یعنی بین بلوغ و بین بچگی برادرم منم می‌برد به مجالس که آشنا بشم به روی اجتماع و رسم و عادات مردم. یه روزی به من گفت که سلیمان البسام یه مرد دانشمندی است و جان‌دیده و محترم وارد شده آمده اینجا همه دیدنش رفتن ما هم بریم ما رفتیم اونجا این سلیمان البسام حکایت هایی که می کرد می گفت که یک روزی در مکه نشسته بودم در حرم مکه روز عید بود رفته بودیم به حرم برای نماز و ما نشسته بودیم خطیب روی منبر بود یک دفعه خطیب از بالا خودش انداخت و فریاد زد امسکو امسکو یعنی بگیریدش بگیریدش صف به هم خورد من رفتم جلا وقتی رفتم دیدم یک درویش ایرانی یک خنجر دستشه میخواسته که خطیب مکه را بکشه و گرفتنش بعد معلوم شد این ادعای مهدویت میکنه یعنی میگه که من امام زمان هستم و چون در خبره کی خنجر رو کشیده خنجر دای, دای و چون در خبر هست که امام زمان اول خطیب مکه را میکشه این امشب روز عید قربان خطیب مکه را بگه که مهذوبیتش ثابت بشه این گذشت شاید مثلا چندین سال گذشت یک وقتی تهران من در انجمن ادبی بودم یک شبی و دعوت شده بودم که خودم در این انجمن کنفرانس بدم انجمن ادبی ایران معروف بود که بعد برچیده شد البته یک شیخی پلو نشسته بود و این شیخ به من گفت که کی امشب میخواد کنفرانس بده گفتم چرا؟ گفت برای که خیلی بچه های مدرسه را جمع کردهاند. و این بچه های مدرسه را دکتر مسبازاده جمع کرده بود که اون وقت خودش شاگرد مدرسه بود در تهران. سعید برای تو که فعیلیس ما را گرم کنه من خوشم نیامد از حرف شیخ بخی بهش بیتنایی کردم فرات آمد جلو من گفت آقا مگر شما آقای صاحب زمانی را نمیشناسید فامیلش بوده به اصلا نفهمیدم صاحب زمان گفت یا زمانی زمانی بسید بزمان. گفتم نه آقا ایشون مدعات ها صحبت کردن ادعا کردن که صاحب الزمانن مهدی مقودن رفتن خطیب مکه را بکن عجب این همون شخص بوده که گرفتنش اونجا من وقتی که فهمیدم این همون شخصیه که سلیمان البسام میگفت به خطیب دوبام آمده بوده خیلی تعجب کردم و حوادیث یادم آمد در تاریخ که اینجور اتفاقات افتاده مثلا بسیار مسیار ش... ابرتامیز بود بله یک شاعری بود به اسم کسیر در عربی که همه میدونید خیلی شاعر معروفیه این شاعر یه معشوقهی داشت به اسم عزه تمام تغذل کسیر شعراش راجی به عزه است و یکی از شراش اینه که غذا کل و زیدن ففا غریم و عزت و ممطولمهن غریمه ها هر صاحب قرضی قرضش و داد ولی طلبکار عذه، دائماً بهش وعده امروز فردا داده میشه با غیر زحمت هیچ نداره بسیار بسیار معروبه بسیار. که زن عبد به مروان از عذب پرسید که چه وعده ای دادی به کسیر که این شعر رو ساخته گفته بود وعده بوس بهش داده بودم گفت برو بهش بده گناش گردن من <تصفيق> <تصفيق> عرض کنم که مزرات میخوام در... یک معترضه جناب فرامرزی اطوان همین مضمون رو جور دیگرش فروغی بسنامی داره بله, بله من زلبت ست هزار همان. بوسه طلب داشتم هرچه به من داده ای وام عطا کرده ای عطا کرده عطا بله ارز کنم که یک کسی در بسره عطر میفروخت زنها میامدن نسی عطر ازش میبردن قسطی قسطی این دفعه می اومدن قرزشون می دادن بازم می بردن زنهای خوشزوگی بودن یک خانم بلندبالای خیلی خوشقامت و خوشهیکلی همیشه می اومد از این عطر می برد و قرزشون نمی داد یک دفعه با یک عده زن آمده بودن اونجا زنهای دیگه قرزاشون رو دادند و بازم عطر بردن این خانم بازم عطر برد قرض پیششو نداد گفت خانم آخه شما همیشه میدن نسیه میارید میبرید و قرضتون رو نمیدید آخه قرض پیشتون رو بدید بازم من بهتون بدم گفت حالا این دفعه بده دفعه بعد من میام همه پولات رو یک جا میدم گفت قضا کل ویزدین فوفا غریمه و عزت و ممتول مهنن غریمه ها همه بده کارا بده بدهوشون دادم آدم. از ذیحه امروز و فردا میکنه دائما طلبکار او در زحمته هر دفعه جنازی زدن زیر خنده گفتم مگه تو اینو میشناسی گفت گفتم این همون عز عجب آه. عجب بله باز اونجا هم قرض رو نمیداده اونجا قرض عاشقم نمیداده باز حساب که از این داستان هایی که بسیار شیرین بود عجیبه که برای آدم اتفاق میفته خیلی زیاده در تاریخ خیلی خیلی استاد لذت بردیم و تمنا می‌کنیم حین باز مکالمات و خواندن اشعار باز اگه چیز بیاتون آمد ما رو بی‌نصیب نذارید. بله، باحش باشه برای دفعات دیگه دیگه. حالا چون وقت زیاد می‌گیره، دیگران باید صحبت کنم، ولی از خاطرات من زیاد دارم. البته جناب علی که دنیای خاطره و دنیای شکره. فضیلت هستید. خب، خانم بامداد، سر کار خاطره نمی‌فرمایید، چری؟ اگر اجازه بفرمایید، به جای بیان خاطره‌ای شعر دیگه‌ای بخونیم جای آواذ ما با اینجا نهایت آزادی هست بره. که خانم ها آقایون شعرشون رو بخونن اگه خاطری ندارن اجباری نیست برای تفنن هست و تغییر ذائقه روحی که ارج می‌کنیم گای ای بفرمایید خب آماده هستیم همه آقایون همس که حاضرن که شعر خانم باامدادو بشنونن آقای, آقای شعیب موافقت بفرماییدین आवाज راهگذر فرمودن می‌خونن بله آقای سؤیلی گفتید خانم خوبیه خانم بله ارز کنم که منزل ما کوچه پشت مسجد سپرسالار بود بله. و اونجا برخلاف حالا که خیابان وسیع شده و همه خونه های قدیمی رو خراب کردن خیلی شاعرانه بود پیچ در پیچ پیچ در پیچ در صفت خود خانمه هست <تصفيق> <تصفيق> خب به همین جهت هم هستن که شاعرانه هستن و آقایون زیاد براشون شعر می سازن بله به هر حال منزل ما اونجا بود و شاطره، کاسبه، شبرد می شدن، آواز می خوندن حالی داره در... آواز آخر شب جدا؟ بله خیلی و مثل اینکه در همه ایرانی این اثر داره همه علاقه دارن چون به این شعر آواز ره گذارم اظهار علاقه و لطف میفرمان. بله در منم که دختر 17 ساله بودم خیلی اثر کرد و کافر چون همه را به کیش خود پندارت فکر کردم که این رهگوزرم نه شیر آبازه رهگوزره شما خانم سر خیلی زبون هاست و من همیشه دیدم که میخونن بله بندم خودم در مشاعره یه دفعی در آغاز مشاعره خوندم و طرف داران بیشماری داشت حالا صدای خودتون شنیده بشه خیلی لذتش بیشتر خواهد بود بله نیسین که رهگوزر میفهمیده تو خونه کیه که کی <تصفيق> اون که اونم صاحب ج و دل نخوانند که سیدش نکند دلداری حسنا دلبسته بسته کسی هست به اینجا حد این شعر رو ساختم که با اجازتون بخونم و آقای دکتر شفق که همسایه ما بودن نکته فرمودن اولین بای که این شعر رو در دانی رو عالی خوندم گفتن که حتما اون موقعی که رد می شده این خواننده منم اونجا خوابیده بودم و از این دنده به اون دنده شدم قرضیدم گفتم وای نصف شبم فریاد می‌زنن نمی‌ذارن آدم بخوابه اما خانوم این شعر رو این همه احساسات لطیف رو در اثر آواز این خواننده پیدا کرد باذ بکنم که شعرا مثل تشبیه می‌شد مثل رادیو امواج صدا در تمام فضا پخشه دستگاه رادیو می‌گیره گرام نمی‌گیره چند دلیل صدرا این شاعر دستگاه گیرندش خوب کار میکنه این امواج روحی و انسانی و لطیف رو میگیره و پخش میکنه و علائم پریشان شرد گل به باد سحر نهیزم که نشک افداجوز خب ما مدعی شنیدن شعر قشنگ شما هستیم و خواهش میکنیم که آقای شریف هم همراهی کنن شعر شما رو گذ از داغ دلم با خبری که به هر ناله ع سن برایت شرری مگرین آتش من از بر دیوار گذشت که در افتاد به دامان دلله <تصفيق> دل دا رهگذری مگر آگاه شدی از خم تنهای من که به غم خاوری من در دل شب نه گری مگر از گلشن عشق آمدی ای بلبله مست که چنین ناله ی جانسوز ندارد بشری گر تو از آه من این گونه پریشان شده ای زی چه در دلبرم این آه ندارد اثری بازگو شب رو به بیدل زی چه آرامت نیست به ره کیست که در نیمه شب پیسه پری تو همه ای هم نفس از یار شکایت داری به غم اشق بوتی مهوش و تناز دریک تو همه مرغ مرق گرفتار چو من زار و دلخسته و آشفته و بیبال و پری شب تو نیز به فریاد و فغان میگذرد تو همه سوخت دل چشم به راه سهری مگر از راز نهفتن به فقان آمده ای که کنی فاش غم خیش به هر بام و دری کمی آهسته تره شب رو از این کوی گذر که نوای تو بود مرحم داغ جگری ز سکوت شب و تاریکی و تنهای خیش خاطر آسوده کن و بی مدار از خطری نه همه آنچه به رهبینی دیوار و درست پس دیوار نگر مردم صاحب نظری خیلی دل اینجاست همه تو و نغمه تو که به جز ناله و فریاد ندارد هنری زغن من تو به دین ناله حکایت ها کن اگر از منزل جانانه من میگذاری می زن... فهمم فهم. گوی که ای خفته بیادار که تا این دل شب خواب را یاد تو رهبسته به چشمان تری گوی ای خفته قمم کشت خدا را در یاد که به جز عشق تو هم نیست گناه دگری خیلی خوب آفنی خیلی خیلی آفنی خیلی آفره. آفره. اكرام کی نداری تو با اجازهتون موج خودسر رو سلام حال اومدید چیز دیگه بخونی بله با هم گوشین به جای خاطره خواهش میکنم خودش میشه برای ما خاطره باشه بله <laughs> ان شاء الله موج خودسر آرام سوال اینا آقای رضایان سوال کردن که تحت تاثیر چه احساسی فردی قبلی رو اینا بنده سوال میکنم حتما کنار دریا بودید موجی دیدید <laughs> به خاطرم هست انگلستان رفته بودیم بل. کنار دریا بل. تابستان بسیار پر جمعیت و گرم و تابستان گرمه؟ یعنی گرم از لحاظه معنام معنام بل مذرقی هاگم تابستان هستران گرم لخیر البته گرمتر از لنده <تصفح> بل انباج رو می دیدم که می دون در ساحل و دو مرتبه بر می گردن محف می در دریا الهام گرفت بل الهام گرفتم از این خیلی خوبه با اجازهتون شعری که خیلی هم کچک هست بخونم خواهی شوشم آرام ساحلی تو که بازوگو شوده ای من همچو موج میده و من در کنار تو من در کنار تو چور سم محف میشبم در بازوان دلکش اندهگو سار تو خیلی آرام ساحلی تو که بازوگو شوده ای من خسته شکست دلا شفت از علم جان پر خروش و جوش ز امید و بیم اشق دیوان وار در بر گرم تو می دون آرام ساحلی تو که بازو شده ای من موج مست خود سر آسی بی انان نتوانیر مرا به نشانی به عمق دل برگردم از برد سوی دریام بیکران خیلی خیلی خیلی خیلی خب، استاد فرامرزی سر سرکارالی که میهمان عزیز ما هستید بفرمایید ما از کدام بی که از آقین شایران شروع بکنیم حالا والا فرقی نمی کنه، خودتون بهتر تشریز می دید اگه ما فقط بفرمایید، ما این سنت قدیمی رو رایت بکنیم که این مسئله سن است و عدب اختزا میکنه از بزرگترها شروع بکنیم ما آقای عویستا؟ جزوی ما بپرسم، ساوش. چند سالتون هست؟ سرکار چند س 1500 سیو باه او آیاتری در حدود 40 40 فضا آیاتری ما شروع می‌کنم ولی از لواذ فضیلت و ادب و شعر جناب اوستا سمت اوستاری بندر دشتیل خواهش می‌کنم حل بفرمایید دیگه خواهش می‌کنم با انتخابا می‌کنم از اون طورش نه خاطر می‌بینم تو رحم نکنید فقط می‌رایم به سمت آیاتری بدايه دادند چرس کنم خدمتتون خاطری اول بفرمایید اگر دارید بعد بفرمایید چرتون رو بفرمایید هر دیگه آزادیه اینجا مجلس حاله دیگه هیچ تکلفی نیست راحت هر چی دوست دارید بفرمایید هر چی میخواهد دل تنگت بگوید تشکر هر شبات که حقیقتش اینه که اون خاطره ای که ما می خوایم بگیم باید این انبساط خاطره ی هم همراه داشته باشه یعنی تا حدی خنده آور باشه ولی من فکر می کنم که خنده آور ترین خاطره اینه که من یه خاطره یه خنده آوری داشته باشم چرا شما چتونه مگه آقای هستم من معتقدم یه مقداری از این غمزدگی ها مولود تلقینه آدم امیتوار باشه شاد باشه الان مثل جناب فرامورزیونی سردماخ حال در چنین سنی از همه ای ما جوانترن ماشالله و... منشان هم وقتی به سن من رسیدن مثل من میشن چون میبینن که میدونن که خیلی از چیزایی که بهش همیت میدادن وهمه آفرید آفرید بسیار فنده خوب خب پس حالا بفرمایید حالا میخواد توسوم انگیز باشه میخواد عبرت ها میز حال در افتیاریم که گوش بینید میخواد خاطره عاشقانه باشه که بهتر <تصفيق> بله چون میون شاعران من از اون انا... که خانم از ابتدایی که بنده شاید گل و شناختم زیبایی رو شناختم همینطور عاشق بودم تا همین حال و پس از اینم خواهد بود از ما شغلتون عاشقی شغل شغل شاعر عاشقی حقیقت همیشه آذری در وجود من خدا این آذر رو فروزانتر کنه خوشابر من هر شام و هر روز همه درد و همه داغ و همه سوز تشکر عاشق تر از این کنم که هستم حال چند سال پیش یک دوستی از دوستان بنده که نامه یک بنده براش نوشته بودم این نامه به دست یک روان پزشک میافته سهی آقای روان پزشکم تحصیل کرده فرنگستان و هنوزم محکمه ای باز نکردن بلاخره باید خودی می نمودند نامه منو میخونند و بعد با خودش فکر میکنه و به زبان میاره که عجب دوست من می پرسه که چیه موضوع؟ چه اتفاقی افتاده من که چیه می که به یک مشکل بزرگ روان شناسی مگه پیرمردم با خوندن این اینا خب اون مشکل بزرگ چیه نویسنده این نامه هر کس هست دیوانه خطرناکیه عجب که با... <laughs> با اصرار هر چه تمامتر میخواد دیوانگی خودش رو پنهان کنه اصلاً خطش لبد نامنظم نمیشه ولی آدمم چطوری؟ انتظامی بوده برهن. که در خط بوده. حالا مطمئن نیست که اینطور نبوده. خودم. <تصفيق> <تصفح> البته شوخی می‌فرمانم. <تصفح> <تصفح> <سفح> خودم چندان به عقل خودم تکیهی ندارم ولی خب از اینکه خطرناک باشم یه خیلی جالب بود. به هر حال میگن خلق و مجنون عاقل است. کوپروز انفجاری پیش بیاد اصلا اتفاقی. به هر حال دوست من داشت میشه طبیعتا رو مهر و محبتی که با من داشت. ما رو ورداشتن و بردن رفتن البته نگفتن به من گفتن جایی دعوتی دارید اونم پنشش نفر دیگر رو دعوت میکنه که امروزی آدم جالبی رو میخوام نشون شما بدم شما صحیح. تمام حرکات اینو زیر نظر بگیرید خب بنده به عنوان یک مهمان وارد مجلسی شدم <تصفيق> بعد ملاحظه بفرماند که مرتبه بیست جفت چشم همینطور دقیق توی چشم جما از, <تصفيق> از کوچکترین حرکات من گفتید آب خیال میکرده الان فشمی ندار میکنی <تصفيق> و دران خیال میکرده الان بم منفجر میشه به هر حال از کفش بنده تا موی سرم از صحبت کردنم از سلام علیکم از نشستنم و بالاخره این نگاه کردنها طوری بود که به کلی منو از خودی خودم پیاده کرد گفتم چرا همش من تماشا میکنید بعد اون مرد یه اشاره کرد اون مردی که زل زده بود داشت خوشمرد یه اشاره کرد مثلا خب بعد من فهمیدم تأیید کرد که این که اینم یکی از علائمشه ارزه کردم برهان هر چه شما عصبانی‌تر می شدی هر چه بیشتر بنده ناراحت می شدم مهم بگو ارز بیشتر به اصلاح مدرش به دست میدونم و خلاصه به هر حال نمیتونم اون نظریه او تا چه اندازه درست بوده ولی حالا پنج شیش ساله میگذاره که اتفاقاً دیوانی خطرنای که تو وجود منشسته هنوز خود اینشو نداده اتفاقاً نظرم آقای عبستان نتیجه ای که از این داستان میگیریم اینه که برای کسی اولا خط ننویسید اگر نوشتیم، ما ما رو جلسه دعوت کردن تو چیش ما رو زر زدن وشد نکنیم چون ممکنی همچه هستیم در باره بندن بکنن در باره دیگری هم بکنن با... در فرانسی مسئلی هست میگن دیوانه ها نابغه هایی هستن که موفق نشدن شما موفق شدید نابغه شدید خب حالا آماده برای شیدن شعرتون و همراهی ساز آقای شریف البته بنده به خاطر اینکه بیشتر از دوستان استفاده بشه و سخنان بهتر و عالیتری گفته بشه این است که یه شعر کتایی میخونم قزل خواهش میکنم عمولا آقای عویستا هم قزل سرا هستن اتا تا هم قصید سرا بیش البته... را سیمشون کی رو نشته گربان هستی تشکر هر شود که این قزل رو چند وقت پیش ساخته بودم میخوام حضورتون رو ارز کنم حال خوب یا بدش اون تا که قبول افتاد و چه در نظر آهی خواهش بگنم ان بگو تا کیستی مهری بگو ماهی بگو خوابی خیالی چیستی عشقی بگو آهی, آهی بگو بگو بابا. راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن دیگر بگو از جان من جانا چه می خواهی بابا. بگو بگو بگو گیرم نمی گیری دگر زا شفته اشقت خبر بر حال من گاهی نگر با من سخن گوی گوی گل پی هر خس مرو در خلوت هر کس مرو مرو گویی که دانم پس مرو گر آگه از راهی بگو قنخور دل ای مهن ای از درد من آگه نه ای ولخ نه ای بلح ای از دردم آگاهی بگو بگو بافه این زینبیش آزارم مکن پیش همه خارم مکن خارم مکن زارم مکن گرزان که بد خواهی بگو با با بر خلوت من سرزده یک ره درا ساغر زده آخر نگوی سرزده از من چه کوتاهی؟ بگو بگو من عاشق تنهاییم سرگشته شیدائیم دیوانه رسوائیم تو هرچه میخواهی بگو بگو بگو خوش نفتان باش خیلی خود تصدیق اون برش برش بر... بر... بر... <تصفيق> بر... بشت... <تصفيق> <تصفيق> خیلی خوب یک شیر دیم اگر میلتون هست بفرمایید میان این همه دلبر که همنشین دارم تو ره زن دل و دین منی یقین دارم مخاطبتون بنده هستم ها؟ بله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> به تیر روزی من کم مبین میان این همه دلبر که همنشین دارم تو, تو ره زن دل و دین منی یقین دارم بخش. خیلی خوب بخبتر حافظی خیلی به تیر روزی من کم مبین که همچون شب هزار رشته گوهر در آستی آفلیم. دارم آفرین چون این رویزه برم دیگر این چه است که من اگر گله ای دارم بزنید. الهز همین دارم م. به شوق روی تو آیم چون بینمت با غیر ندیده بگذرم و دیده بر زمین دارم. عفو. نهایت حیا و شب. تشکر. به شب زهر موژ اشکی شم شمع بالینم. به شب به شب زهر موژ اشکی شم شمع بالینم. بسیار. که انتظار تو تا روز واپسین دارم. خیلی خوب، خیلی خوب. کجا به دیده من خواب آشیان‌گیرت؟ که رهزنی چو خیال تو در کمی نگارم خیلی خوب خیلی خوب نمیدونم استاد فرامرزی خانم بامداد و سایر دوستان مثل بنده احساس میکنن که یک آواز گرم و شیرین و یه ساز گرمتر بشنویمه نه؟ بنده که اول اظهار عقیده ما کردم بنده چرا عرضو نداشته باشم؟ خوب آقای من امروز اگه صدا بنده میخوام امروز از یک هنرمند سال خورده که در حدود پنجاه سال صدای گرم و پرشور او در سراسر مملکت تنین انداز بود یادی بکنه این هنرمنده ارزنده که آواز همایون او با شعر از تو با مسلحت خیش نمی پردازم هنوز در گوش تنین اندازه میدونید که تاج آفد تاج, تاج اسفانی بله این مونرمند همونطور که حد زدید تاج اسفه ها و من میخوام در این برنامه یک کار تازه بشه چون این بزم شاعران حال دیگری باز پیدا بکنی به این معنی که آقای ایرج همون آواز همایون تاج رو با همون شعر با همون تحریرها با همون حالتها برای ما بخونیم هزار افریق آقای رجی پیشار من این پسند دیگه نمیم پسند دیگه خواهی رجی پیشار البته مثل اون صفحه آقای تاج در نید ولی خب تا اندازه میتونم شبیه به قول معروف مالایو درک و کلو لایو درک و کلو هر اه چیزی اه که همه‌اش نمی‌تونیم به دست بیاریم بعضیشو باز پرگذار نکنیم و اطیان بکنیم بهش منظوری هست که شما اولا آوازتون خوبه و شکست نفسی فرمودید خانم جناب شما و, خوب و خوبه صدای مد کنوتی ایشون و دیگه آماده هستیم که این آواز قشنگ رو بشنویم چشمه حضرتم میگم کار خوبی باشه Thank <laughs> you. Jo Arvoza Oh yeah. jo Amolbo Jo oi oi oi okhdo odjos Okay yeah. <coughs> Why don't I امیدوارم آه. که صدای شما هم سال‌های سال در کشور ما تنین انداز بشه و خدا کنه هنرمند گرامی آقای تاج همکنون صدای شما رو در هر جا که هستند شنیده باشند و بدونند که شما به عنوان حق شناسی از یک هنرمند این آواز خوندید حتماً همینطور خب آی فرامرزی لذت بردید شما بسیار بسیار خانم بامداد و دیگه آقا بسیار گرم شدید خیلی واقعاً به تار آقا، آقای شریفم بسیار بسیار جان سوز دادن. بسیار. آقای آجا بسیار دارم. متشکرم اگه اجازه بفرمایید من در حضورتون مرخص بشم. کار دیگه آقا ایرج. خیلی خوب. با اجازه خانم و آقایون. قربان. لطفاری. همون خیلی متشکرم. خیلی ممنون. و خیلی خوب. عرض بذورتون آقای اطری. قرارم بستن که شما فارق البال بنشید و شرتون رو شروع بفرمایید قبل از اینکه شما شرتون شروع بفرمایید اجازه بدید من یک سابقه ذهنی بشنامندگان بدم تقاضیم. این آقای عطری ما همان آقای علی عطری کرمانی هستند که در کرمان سکونت داشتند و صاحب اون قسمنامه معروف هستند که من خواهش می‌کنم خودتون اون قسمنامه رو بخونن و بعد شری دیگه شون حالا آیت‌طری شما ب قسمنامه‌شون رو بفرمایید از اولا اینکه این که افتخار شرکت داریم بزم عدبی رو ببنده مرحمت فرمودین تشکر میکنم و با تصدیق بفرمان که شیر خوندن در حضور استادید شعر و عدب بخصوص چنو با استاد فرمان خیلی مشکله استاد جزو دادن که همه هم آقاییون شعر بخونند و خودتونم جزو استادید شعر هستید بسیار عالی شعر تشمست چی رو بفرمانمون قسم روی ش قسم رو بفرمایید بعد میشه دیگه اول استدائی من این بود که قسم رو شروع گفت هره همون قسم نمارید چون آرم خود شماست مثل اینکه. به مهر تو ای ماه زیبا قسم به چهره تو ای مهر رخشا قسم آفره به آن سینه هم چه صبح بحار به آن زلف چون شام یالده قسم آفره به آن شکرین خنده نوشبار قوم دیدگان فریبا قسم, با سینه قسم, با از از قسم با خیلی عالی ماهی که سینه‌ای سوخته چشات شعله تا عرش قسم به اشکی از دیده‌ی عاشقی به دامن چک از جلالا سا قسم عالی شد با که نو فرو بست چشم از مداوا قسم با گمگشته راهی که از کاروان جدا مانده افتاده از پا قصر بشه کرده راهی که از کاروان جدا مانده افتاده از پا خیلی قشنگه اجازه بده واپس بمونه از کاروان ها بخون این دگر لاله داغدار دا که بین شستی تنها به صحرا قسم به موجی که از دست ساحل مدام قراسیری بیم‌ها با قسم به جان‌های از عاشقی قرار <سطور> به دل‌های عاشق شیدا قسم به آن ناله‌هایی که پر <سطور> می‌کشان به سوی خدانی می شب‌ها باز بفرمایید باز بفرمایید ناله‌هایی که پر به سوی خدانی می شب‌ها قسم به به دلدادگانی پریشان من که در کوه یا رنگ رسوا قسم. به عمری که در آرزویت گذشت به دیروز و امروز و فردا خیلی خوب. با این تنلازی و دلبی به شیرین به لیلا به اذ راه قسم. به آن آتشین پرتو ایزدی که تاید بر تور سینا قسم. اگر می شناسی خداوند را به ذات خداوند اکتاب اکتاب که عشقت به دل رفتنی كبه. نیست نیست به پرورگار توانا اکتاب صدا خیلی گرم و با احساس بله کرمایی همه صدایی گرم دارن خانم بلی مردمان خوب شریف بلکی خوب یه شیر دیگه باید بفرمایید شما مثل آقای عویستال خانمی با ام داد ارز کنم این ممکن است کنم از جناب رضایان دوست عزیزم که سلامات بفرما و, و پسرم آقای رضایان معلوم شد که اول وعده دادیم خاطرات خب خواهش میکنم در اختیار نما به به حساب خاطرم گذاشته میشه بله اسم این شعر این عنوانش خاطراته خب امیدواریم که شنوندگان عزیز به صورت خاطره از شما قبول کنم خاطرات تلخ و شیرین آقای <تصفيق> شعر باید بگی رو حالا گوش میکنید <تصفيق> <تصفيق> خاطرات شیرین کمتر <تصفيق> <مشور> آدم میاد آرشیوی درخیه امیدواریم که همیشه خاطراتتون شیرین باشه و در زندگی خوشبخت فیروز و موفق پاسپورت ازتون شروع می خواهش منو برید آقای فرحان شما ما رو یاری خاطرات ترخ چه میخواهید زین جان دردمند بلا دیده وی رفته های تیره چه میخواهید زین جسم مستمند جفا دیده بسیار ای تیر شام متش و بحشت با این دل شکست مدارا کن بی سوپهدل فروز جهانارا از چهرهین نقاب سیاه واکن <تصفح> پیتم به خود چه شعله در دود در این سکوت و ظلمت و تنهایی و تنم ترسود پیکار آشوبی و شکیبایی به <تصفح> یادایدم شبیه چه قسم ها خورد بر استوار بودن پیمانش یادایدم شبیه چه قسم ها خورد بر استوار بودن پیمانش بینک چگونه زود زی خاطر برد اندا چه بود مرگ غزل خانش خیالی خیالی او رفت و پشت پای به پیمان زد من نیز رفتم از پی پیمانه آفره. او بوسه بر لبان حوث ران زد آیه فرمازی می فرمان دوارد خیلی بود او رفت و حش پای به پیمان زد, زد. من نیز رفتم از پی پیمانه خیلی او بوسه بر لبان حوث زد من نیز بوسه بردر می خانه شید بشکست عهد عاشق صادق را بشکست عهد عاشق صادق را افسوس قدر عشق و وفا نشناخت بنها زیر پادله عاشق را نشناخت کیمیای وفاد نشناخت خی رفتن امید هستی و می‌دیدم با چشم خود که شور جوانی ما وین روح رنج دیده یه نامیدم چون گلشن خزان زده ای و چون که شمع هستی من خواهد تا سرن حد به بستر خاموشی شادم بدین امید که میافتد این عشقم به دست فراموشی بخواه بخواه خیلی خیلی خواه شکنشون خب دوستان اجازه میخوام که بنده از شیخوندن سفر نظر کنم و برنامه رو به همینجا. خب بهیش وجه آقا شما خودتون کاردانده اید بزمسی آقا سوالی بله نخیر بنده که دا داشتم بله بله حتماً راجب چاش بتواد بکنم بنده اتیان عام می کنم امتثال امر می کنم مصصره مرضی من شری دارم عنوانش ای خداست و در حالتی که توجه به مبدع داشتم در گوشه نشسته بوده میشه رو ساختم و امیدوارم بتونم اون حالت و اون احساس و اون ساعت رو به شرمندگان عزیز منتقل بکنم پس خای شریف شما شروع بفرموید تو من شیر رو شروع بکنم ای خدا ای رازدار بندگان شهر مگیند ای خدا ای رازدار بندگان شهر مگیند ای توانایی که بر جان و جهان فرمان روائی ای خدا ای هم نبای ناله پروردگانت زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنای بزارم عشق می به مجگانم به جرم روسیاهی ای پناه بی پناهان موسپید روسیاه بهم اشک می مشگانم به جرم روسیاهی ای پناه پناهان مو سفید روسیا هم روز شب از دیدگان اشک پشیمانی فشانم توبه شوم شاید از اشک پشیمانی گناهان وای بر من وای بر من با جهانی شرم ساری کی توانم تا به درگاهت برآورم نیمه شب دست نیازی با شرمندگی ها کیز دست من براید تا به جویم چار درد دلی از چار سازی ای وصو شف ای وصو شف خواب نوشین گرم می به چشمم خواب میبینم چو مرغی میپرم در آسمان ها پیکر آلودم را خواب شیرین می رو روح من در جستجویت و جویت میپرد توبکرون ها بر تنه آلود منگر بر تنه آلود منگر روح پاکم را نظر کن دوست دارم تا کنم در پیشگاهت بندگی ها من به تو رو کردم بر آستانت سر نهادم دوست دارم بندگی را با همه شرمندگی ها مهربانا مهربانا با دلی بشکسته رو سوی تو کردم رو کجا آرم مگر از درگهت گویی جوابم بی کسم بی کسم در سایه مهر تو می جویم پناهی از کجا یابم خدایی گر به کویت ره نیابم ای خدا ای رازدار بندگان شرم ای توانایی که بر جان و جهان فرمان روائی ای خدا ای هم نوای ناله پروردگانت زین جهان تنها تو با سوز دل من آشنا شیزارم شواندگان ارجمند با اجازه شما از خانم پروین بامداد و آقایان استاد عبدالرحمان فرامرزی مهرداد اوستا، علی عطری کرمانی رزائیان ایرج و فرهنگ شریف که به بزم شاعران انایت ورزیدن تشکر میکنیم و به اتفاق این سروران از شما خداحافظی میکنیم و از شاعران عرجمندی که در تهران و شهرستان ها هستند و بنده دسترسی با آنها ندارم تمنا میکنم با مکاتبه به نشانی رادیو ایران بزم شاعران آمادگی خود را برای همکاری در این برنامه اعلام فرمایند برای همه شنوندگان صاحب دل و سخن شناس بخت بلند و دل خوش آرزو میکنیم روز بخیر